هیچ کس نبود امروز میخوام قصه اسیر شدن باز آبی به دست یاندریج رو براتون تعریف کنم سالها پیش پادشاه و ای در جزایر غرب سلطنت میکردن که تنها پسر خودشون رو خیلی دوست داشتن پسر به جوانی رشید قوی و خوش سیما تبدیل شد که میتونست بهتر از همه جوانان همسن نسال خودش بدوه، تیراندازی و شنا کنه و حتی شیرجه بره. علاوه بر این اون قایق سواری و آواز خوندن با نوای چنگ رو هم بلد بود. شبهای زمستون که همه در تالار بزرگ دور آتش جمع می شدن و به ساختن کمان یا بافتن لباس می یاندریج برای اونها داستانهایی رو از نیاکان خودش تعریف می‌کرد. به این ترتیب زمان سپری شد و یان تقریباً برای خودش مردی شد. بعد از اون مادرش ملکه درگذشت. در سراسر جزیره عزاداری بزرگی برپا شد. پسر و پدر ماتم گرفتند. اما قبل از آغاز سال جدید پادشاه دوباره ازدواج کرد و ظاهراً همسر قدیم خودش را از یاد برد فقط یان به فکر مادرش بود یک روز صبح که برگهای درختان دره رو به زردی رفته بودن یان کمانش رو روی شونه انداخت تیردانش رو پر از تیر کرد و در جستجوی شکار به بالای تپه رفت اما پرنده‌ای دیده نمیشد، تا اینکه سرانجام یک باز آبی از کنارش گذشت یان کمانش رو بلند کرد و به سمت باز نشانه گرفت چشمهاش به باز دوخته شده بود و دستش بی بود اما باز به سرعت پرواز می کرد تیر یان فقط به یکی از پرهای بال باز خورد موقع غروب خورشید یان پر رو در کیسه ای که مخصوص حملش شکار بود گذاشت و راهی خونه شد موقع ورود یان به تالار نامادریش پرسید آیا امروز شکار بیشتری برام آوردی؟ یان در حالی که پر باز آبی رو بهش میداد جواب داد: نه، فقط همین گیرم اومد. زن پر رو به دست گرفت و در سکوت بهش نگاه کرد. بعد رو به سوی یان کرد و گفت: من با این پر تو رو جادو می کنم تا تو همیشه سردت باشه، خیس و کثیف باشی و کفشات همیشه سوراخ باشه. مگر اینکه اون باز آبی رو که این پر بهش تعلق داره برای من به اینجا بیاری. یان پاسخ داد اگر اینهایی رو که گفتی جادوه من هم میتونم تلس کنم تو باید در حالی که یک باد در قصر و پای دیگر در قلع است اینجا بیستی تا من برگردم و صورتت باید رو به باد باشه از هر طرف که بوزه. بعد همونطور که نامادرش گفته بود به دنبال پرنده رفت. وقتی که از به پشت سر خودش نگاه کرد دید که ملکه در حالی که یک پاش در قصر و پای دیگرش در قلع است ایستاده و صورتش در جهت کوچکترین نسیم ها میچرخه اون از سپه ها و رودخانه ها گذشت تا به دشت پهناوری رسید اما چشمش به باز نیفتاد هوا تاریک و تاریکتر شد پرنده کوچک به رفتن و دیگه یاندریچ نمیتونست چیزی رو ببینه پس در زیر بوته ها دراز کشید و به خواب رفت در رویاهاش یک بینی نرم اون رو لمس کرد و یک بدن گرم در کنارش قرار گرفت و صدای ضعیف به نجوا بهش گفت یاندریچ بخت با تو یار نیست من فقط میتونم استخان و یک گوسفند رو بهت بدم و تو باید به اون راضی بشی. یاندریج با شنیدن این حرف از خواب پرید و روباه جیل مارتین رو مشاهده کرد. اونها آتشی بین خودشون روشن کردند و شامشون رو خوردند بعد روباه جیل مارتین به یاندریج گفت که مثل قبل دراز بکشه و تا صبح بخوابه. صبح وقتی که یان بیدار شد جیل مارتین گفت بازی که دنبالش هستی، به قول پنج سر و پنج گردن و پنج کوهان تعلق داره من راه خونش رو به تو نشون میدم و بهت توصیه میکنم که با زیرکی و شادی به گفتهاش عمل کنی و مهمتر از همه این که با مهربانی با پرندگانش رفتار کنی چون به این ترتیب ممکنه او خودش باز رو به تو بده تا بهش غذا بدی و از اون نگهداری کنی وقتی که اینچانین شد صبر کن تا قول از خونش خارج بشه بعد پارچه ای رو روی باز بنداز و اون رو با خودت ببر. فقط مواظب باش، هیچ یک از پرهاش و اشیای داخل خانه تماس پیدا نکنه وگرنه نحسی اون گریبانت رو خواهد گرفت. یاندریچ گفت، از توسیت سپاسگذارم. دقت میکنم که اون رو به کار ببندم. بعد راه خونی قول رو در پیش گرفت. قول با شنیدن اینکه کسی با صدای بلند به در خونش میکوبه فریاد زد کی هستی؟ یاندریج پاسخ داد کسی که کار میخواد. قول دوباره پرسید چه کاری میتونی انجام بدی؟ یاندریج در پاسخ گفت من میتونم به پرنده ها بدم و به حیوانات رسیدگی کنم. میتونم شیر گاو بز و گوسفند رو بدوشم. البته اگه از این حیوانات داشته باشی. قول گفت پس وارد شو چون من احتیاج زیادی به چنین شخصی دارم. به این ترتیب یاندریش به درون خانه رفت و آنچنان به خوبی و با دقت به پرندگان و حیوانات رسیدگی کرد که قول بیش از همیشه راضی شد و عاقبت فکر کرد که برای غذا دادن به باز هم میتونه به یاندریش اعتماد کنه. یان خوشحال شد و اونقدر به تیمار باز آبی پرداخت که پرهاش به درخشش آسمان شد و قول شاد و خوشحال بود. یک روز، قول به یان گفت مدت هاست برادرانم که در اون طرف کوه هستن از من خواستن که به دیدارشون برم. اما هرگز از ترسی که به خاطر باز داشتم نتونستم این کار رو بکنم. حالا فکر میکنم که میتونم یک روز اون رو به تو بسپارم. من قبل از تاریکی هوا بر میگردم. صبح روز بعد هنوز قول کامل از دیدرس یاندریچ دور نشده بود که اون باز رو گرفت. و در حالی که ای روی سر پرنده انداخته بود، همراه با اون به سمت در شتافت. اما انوار خورشید از بین پارچه گذشت و در هنگام عبور از درگاه خونه باز جستی زد و نوک یکی از پرهاش به درگاه تماس پیدا کرد و صدای بلندی به وجود اومد که باعث شد قول با سه گام بلند به اونجا برگرده. یاندریج با دیدن اون لرزید اما قول فقط گفت اگر باز منو میخوای اول باید شمشیر سپید روشنایی رو که در خونه زنان بزرگ دیوراد هست برام بیاری یان جواب داد خونه اونها کجاست قول در پاسخ گفت این رو خودت باید کشف کنی یان جرئت نکرد چیزی بگه و به سمت خرابه رفت و همونطور که امید داشت دوستش روباه جیل مارتین رو در اونجا ملاقات کرد. جیل مارتین بهش گفت که شامش رو بخوره و دراز بکشه تا خوابش ببره. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شد، روبا بهش گفت بیا به ساحل دریا بریم. اونها به ساحل رفتند. بعد از رسیدن به ساحل با دیدن دریا که پیش روشون گسترده شده بود و جزیره دیوراد که در میان اون قرار داشت، یان غمگین شد. روبه جیل مارتین کرد و ازش پرسید چرا اونه به اونجا آورده؟ چون قول وقتی که اون رو میفرستاد به خوبی میدونست که یان بدون قایق هرگز قادر به یافتن زنان بزرگ نخواهد بود. روبا جواب داد نامید نباش خیلی آسونه من خودم رو به شکل قایق در میارم تو سوار من میشی و من تو رو روی دریا به سمت هفت زن بزرگ دیو حمل میکنم به اونها بگو که در جلا دادن به و طلا مهارت داری. اونها تو به نوکری خودشون میپذیرن. اگر رضایت اونها رو جلب کنی شمشیر سپید روشنایی رو به تو میدن تا اون رو هم جلا بدی. اما وقتی که خواستی اون رو بدستی مراقب باش که قلاف اون با هیچ چیز در خونه تماس پیدا نکنه وگرنه نحسی اون گریبانت رو خواهد گرفت. به این ترتیب یاندریج تمام کارهایی رو که روبا بهش گفته بود انجام داد و هفت زن بزرگ دیوراد اون رو به نوکری خودشون پذیرفتند یان شش هفته چنان به سختی کار کرد که هفت خانمش به همدیگه گفتند هرگز هیچ نوکری مثل این یکی در جلا دادن و برراق کردن مهارت نداشته بیایید شمشیر سپید روشنایی رو هم بهش بدیم تا اون رو مثل بقیه وسایل جلا بده بعد اونها شمشیر سپید روشنایی رو از گنجی آهنی که در اون آویزون بود بیرون آوردند و بهش گفتن قدر اون رو جلا بده تا جایی که بتونه چهرش رو در تیغه برراق اون ببینه اون این کارو کرد اما یک روز که هفت زن بزرگ دور از خونه بودن یان یعنی با خودش فکر کرد که لحظه بیرون بردن شمشیر فرا رسیده و در حالی که اون رو در قلافش میگذاشت شمشیر رو روی شونش گرفت اما موقع عبور از در لبه قلاف به اون گرفت و در صدای بلندی کرد زنان بزرگ اون صدا رو شنیدند و دوان دوان برگشتند و شمشیر رو ازش گرفتند و گفتند اگر شمشیر ما رو میخوای باید اول کره اسبه که هر شاه آرین رو برامون بیاری یاندرج خار و شرمنده خونه رو ترک کرد و در کنار دریا نشست و روباه جیل مارتین خیلی زود به سراغش رفت. روبا گفت: میبینم که به حرفهای من توجهی نکرد یاندریچ، اما اول چیزی بخور، من یک بار دیگه بهت کمک کنم. با شنیدن این حرف امید دوباره به دل یاندریچ راه یافت. هیزم جمع کرد و آتش روشن کرد و همراه با روباه جیل مارتین غذا خورد و روی شنها خوابید. صبح روز بعد جیل مارتین به یاندریچ گفت: من خودم را به شکل کشتی در میارم و تو رو به سرزمین شهارین میبرم باید پیشنهاد کنی کاری به تو در استبل بدن و به تیمار اسب‌هاش بپردازی تا اینکه عاقبت به قدری از کارت راضی بشه که کره اسبه که هر رو به تو بسپاره که اون رو بشویی و تمیز کنی. اما وقتی که با اون فرار میکنی مراقب باش که هیچ جایی از بدن اسب مگر سم‌هاش با اشرای درون قصر تماس پیدا نکنه و وگرنه نحصی اون گریبانت رو خواهد گرفت. روبا بعد از توصیه‌ای که بیاندریچ کرد خودش رو به شکل کشتی در آورد و راه سرزمین شاه آرین رو در پیش گرفت. پادشاه اون سرزمین تیمار اصبهاش رو بیاندریچ سپرد و هرگز پیش از اون بدن اصبه به اون تمیزی و برراقی و گامهاشون به اون تندی نبود. پادشاه کاملا خوشنود بود. در پایان ماه یان رو صدا کرد و بهش گفت: تو به من با وفاداری خدمت کردی. الان به تو اعتماد می کنم و با ارزشترین چیزی رو که در کشور من وجود داره به تو خواهم سپرد. با گفتن این حرف یان دریج رو به استاب برد که کره اسب که هر رو در اونجا قرار میداد. یان کره اسب رو تمیز کرد و بهش غذا داد و تمام کشور رو با اون تاخت. تا اینکه از باد پشت سرش هم جلو افتاد یک روز صبح پادشاه در هنگام تماشای یان که سرگرم تیمار کور اسبکهر در استبل بود گفت من به شکار میرم آهوها به پایین تپه ها اومدند و الان وقتی شکار اونهاست بعد رفت و وقتی که دیگه در دیدرس نبود یاندریش کور اسبکهر را از استبل خارج کرد و پشت اون پرید اما موقع عبور از دروازهی که بین قصر و خارج از اون قرار داشت، کره اصد دومش رو به در مالید و موجب شد که صدای بلندی ایجاد بشه. در یک لحظه پادشاه دوان دوان سر رسید و مهار اسب رو گرفت و گفت اگر کره اصد به که هر منو میخوای، اول باید دختر پادشاه فرانک ها رو برام بیاری. یاندریج با گام های آرام به سمت ساحل جایی که روباه جیل مارتین منتظرش بود، رفت. جیل مارتین گفت میبینم که اون چه که به تو گفتم انجام ندادی و هرگز هم چنین نخواهی کرد اما باز هم به تو کمک میکنم برای سومین بار خودم را به شکل کشتی در میارم و به سمت فرانسه خواهیم رفت. اونها به فرانسه رفتند و از اونجای که کشتی جیل مارتین بود هر جا که میخواست میرفت و خودش رو به شکاف یک صخره در ارتفاعات رسوند. بعد بیاندریج دستور داد که به قصر پادشاه بره و بگه که کشتیش به سخری اصابت کرده و در هم شکسته و هیچ کس به جز اون نجات پیدا نکرده بیاندریج به عرفهای روبا گوش کرد و چنان داستان قمنگیزی تعریف کرد که پادشاه و ملک و دخترشون شاهزاد خانم همه برای شنیدن اون اومدند وقتی که ماجرا رو شنیدن تصمیم گرفتند که به ساحل برن و کشتی رو ببینند. حالا کشتی به واسطه مد شناور شده بود. کشتی گویی که خطرات بسیاری رو پشت سر گذاشته باشه، در هم شکسته شده بود. اما صدای موسیقی بسیار دلنشینی از درون اون میومد. اومد. شاهزاده خانم فریاد زد: یک قایق اینجا بیار تا بتونم برم و خودم چنگی رو که چنین موسیقی از اون بلند میشه ببینم. قایق آماده شد و یاندریش درون اون نشست تا قایق رو به کنار کشتی برونه. اون به سمت دیگر کشتی پارو زد تا کسی نتونه اونها رو ببینه و وقتی که به شاهزاده خانم کمک کرد تا سوار کشتی بشه با ضربه‌ای قایق رو از اونجا دور کرد تا شاهزاده خانم دیگه نتونه با اون برگرده موسیقی دلنشین تر از قبل بود اگرچه اونها نمیتونستند من و صدا رو تشخیص بدن و از این سر تا اون سر کشتی رو در پی صدا گشتن وقتی که سرانجام به عرشه اومدن و اطراف خودشون رو نگاه کردن دیگه اثری از خشکی به چشم نمیخورد و همه جا آب بود. شاهزاده خانوم ساکت اما چهرش خشمگین بود. عاقبت گفت حقیه کسیفه به من زدی. این چه کاری بود که کردی؟ به کجا میریم؟ یاندیری جواب داد تو ملکه خواهی شد. چون شاه آرین من به دنبال تو فرستاده و در عوض کره اسب که هر خودش رو به من خواهد داد که میتونم اون رو به هفت زن بزرگ دیوراد بدم و در مقابل شمشیر سپید روشنایی رو بگیرم. اون رو باید برای قول پنج و پنج گردن و پنج گوهان ببرم و در عوض اون باز آبی رو ازش بگیرم که قول اون رو به نامادریم دادم تا منو اصل اسمی که برام کرده آزاد کنه. شاهزاده خانم در جواب گفت ترجیح میدم که همسر تو بشم. کم کم کشتی به بندرگاه ساحل آرین رسید و لنگر انداخت. روبای جیل مارتین بیاندریج گفت که به شاهزاده خانم بگه که باید قدری در قاری در میان سخراها منتظر بمونه تا اونها کاراشون رو در خشکی انجام بدن و بعد پیش اون برگردن. اونها سوار قایقی شدن و به بین سخراها پارو زدن و همین که پاشون به خشکی رسید جیل مارتین خودش رو به شکل زن زیبایی در آورد و با خنده بیاندریچ گفت من همسر خوبی برای پادشاه خواهم بود. شاه که سرگرم شکار در تپه ها بود با مشاهده یک کشتی بیگانه که به سمت لنگرگاه می اومد حد زد که این باید یاندریچ باشه که میاد پس دست از شکار کشید و از بالای تپه به پایین اومد و به استبل رفت شتابان کره که هر را از استبل خارج کرد زین طلایی بر پشتش گذاشت و افساری از جنس نقره به سر اسب بست و در حالی که مهار اون رو در دست گرفته بود با عجله به استقبال شاهزاده خانوم رفت. یاندریج گفت من دختر پادشاهی فرانسه رو برات اووردم. شاه آرین به دختر نگاه کرد و کاملا خورسند شد و متوجه نشد که اون روباه جیل مارتینه. پادشا تعظیم می کرد و از دختر خواست که به وی افتخار بده و به قصرش بره. جیل مارتین در حالی که به دنبال شاه آرین می رفت به عقب به یاندریج نگاه کرد و خندید. پادشاه در تالار بزرگ قصر ایستاد و به صندوق آهنی که در گوشهی قرار داشت اشاره کرد و گفت در اون صندوق تاجی هست که سالهای بسیاری در انتظار تو بوده بالاخره به دنبالش اومدی اون همشا تا قفل صندوق رو باز کنه در یک لحظه روباه جیل مارتین به پشت پادشاه پرید و چنان گازی ازش گرفت که شاه بیهوش بر زمین افتاد روباه فوراً دوباره به شکل واقعی خودش در اومد و به ساحل دریا که یاندریچ، شاهزاده خانم و کورراسبه که هر منتظرش بودن تاخت. جیل مارتین فریاد زد: من به شکل کشتی در خواهم آمد. شما بیایید بر عرشه من سوار بشید. اون همین کار رو کرد و یاندریچ، کورراسبه که هر رو به داخل کشتی برد و شاهزاده خانم به دنبال اونها رفت و همگی راهی دیوراد شدن. باد پشت سر اونها بود و خیلی زود سخراهای دیوراد رو در مقابل خودشون دیدن. بعد روبای جیل مارتین گفت بگذار کررعص کهر و دختر پادشاه در این صخره ها پنهان بشن و من خودم را به شکل کررعص کهر در میارم و با تو به خونه هفت زن بزرگ خواهم هم اومد. زنان بزرگ با مشاهده کررعص به کهر که توسط یاندریج به خونه اونها ادایت میشد، بسیار خوشحال شدند. جوونترین اونها شمشیر رسپید روشنهایی را رو گرفت و به یاندریج داد. یاندریج، زین طلا و افسار نقره اسب که هر رو برداشت و همراه با شمشیر به پایین تپه ها جایی که شاهزاده خانم و قرع اسب واقعی منتظرش بودند رفت. هفت زن بزرگ فریاد زدند حالا میتونیم به اون سواری که آرزوش رو داشتیم بریم. اونها زین بر پشت اسب نهادند و به اون افسار بستن و بزرگترین اونها روی زین نشست. بعد خواهر دومی بر پشت اولی و سومی بر پشت دومی و الی آخر سوار شدند. وقتی که همگی نشستند، خواهر اولی با تازیان به پهلوی کرعست تاخت و اون رو به پیش برد. کرعست بیابانها و کوها رو تی کرد و زنان بزرگ به اون چسبیده بودند و از شدت شادمانی فریاد می زدن. سرانجام اسب به هوا جهید و روی تپهی بلند لب پرتگاه پایین اومد. پاهای جلوش رو لب پرتگاه گذاشت و پاهای عقبش رو بلند کرد و هفت زن بزرگ به دره افتادند و کشته شدند. کره اسب خندید و دوباره به شکل روباه در اومد و به سمت ساحل جایی که یاندریج شاهزاده خانم کره اسب واقعی و شمشیر سپید روشنایی انتظارشون کشیدند تاخت. روبای جیل مارتین گفت: «من خودم را به شکل کشتی در میارم و تو شاهزاده خانم کره اسب کهر و شمشیر سپید روشنایی رو به خشکی خواهم برد. وقتی که به ساحل رسیدند روباه جیل مارتین به شکل واقعی خودش برگشت و به یاندریج گفت شاهزاده خانوم شمشیر سپید روشنایی و کرر اسب کهر رو در کوه بگذار و من خودم را به شکل شمشیر سپید روشنایی در میارم و تو منو به نزد قول ببر و در مقابل اون باز آبی رو ازش بگیر یاندریج به گفته روبا عمل کرد و راهی قلعه قول شد قول از دور برق شمشیر سپید روشنایی رو دید و قلب شادمان شد باز آبی رو گرفت و اون رو در سبدی گذاشت و به یاندریج داد یاندریج به سرعت خودش رو به محلی که شاهزاده خانوم کره اسب هر و شمشیر سپید روشنایی انتظارشون رو میکشیدند رسوند قول آنچنان از دست یافتن به شمشیری که سالهای بسیاری حسرتش رو داشت خوشنود بود که فورا شروع به چرخوندن اون در هوا و ضرب زدن و بریدن کرد. جیل مارتین مدتی اجازه داد که قول به این شکل تفریح کنه. بعد در دست قول چرخید و پنج گردن اون رو برید به طوری که پنج سر به زمین قلتید. بعد به نزد یاندریج رفت و به بهش گفت زین طلا و پشت کرر اسب که هر بگذار و افسار نقره رو بهش ببند و سبد حاوی باز آبی رو روی شونهات بگذار و شمشیر سپید روشنایی رو از طرف دسته اون مقابل چهرت بگیر بعد سوار کر اسب شو و شاهزاده خانم رو ترک خودت سوار کن و به قصر پدرت بتاز اما مراقب باش که همیشه دسته شمشیر مقابل چهرت باشه وگرنه وقتی که نامادری تو رو ببینه تبدیل به هیزوم خشک خواهیم شد اما اگر کاری رو که به تو گفتم بکنی خود اون تبدیل به چوب خواهد شد یاندریچ به حرفای جیل مارتین عمل کرد و نامادریش تبدیل به یک دسته هیزم شد و مقابلش به زمین افتاد و یاندریج هیزم را آتش زد و برای همیشه از تلسم اون زن رها شد بعد از اون با شاهزاده خانم که بهترین همسر در تمام جزایر غربی بود ازدواج کرد از اون به بعد یاندریج از هر بلایی در امان بود چون به کمک کره اسب که هر از باد هم جلو میزد. باز آبی براش گوشت شکار می آورد و شمشیر سپید روشنایی دشمنانش رو تارو مار میکرد. گاندریج میدونست که همه اینها رو مدون روباه جیل مارتینه و باهاش پیمان بست که هر وقت گرست نشد بتونه هر نوع حیوانی رو از گله وی برای خوردن انتخاب کنه و از اون به بعد هیچ کس حق نداشته باشه تیری به سمت اون یا هم نجادانش پرتاب کنه. اما روباه جیل مارتین برای کمکاش بگاندریج پاداشی از اون نمیخواست مگر دوستی اون. به این ترتیب تا زمان مرگیان دریج روزگار به خوبی خوشی سپری شد. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی